روز شما بخیر باشه خیلی ما چکرم رسیدیم به بخش پرطرفدار برنامه حضور مهمان عزیز و گرانسنگمون علامه و دانشمند محترم حکیم آل قدر جناب استاد زیایی عزیز از سادات بزرگوار که پیرامون تب سنتی و اسلامی برای ما و شما سخن میگن و راهکار میدن خیلی خوش آمدید جناب آجا جیایی عزیز من فرارسیدن هفته وحدت رو به حضرت عالی و همه سعادات معزز سلمان تبریک میگم. خدا شما رو با آفیت و امنیت بداره همکارهای گرامیتون رو با آفیت و امنیت بداره علت شریف رو با آفیت و امنیت بداره منم به نوبه خودم این سال گشته این تولد های عزیز رو تبریک می کنم و به اصطه پیامبر اکرام رو تبریک ارز میکنم وحدت واقعی بین شیعه و اهل تسنن زمانی ممکنه که اطاعت و تبعیتشون رو از دو پدر روحانی این امت بالا ببرن طبق فرمایش رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم انا و علی ان ابا و ها الامه پیغمبر اکرم فرمودن من و امیر المؤمنین علی علیه السلام و پدر روحانی این امتی اگر امت اسلامی از شیعه و اهل تسنن اطاعت و تبعیت کامل کنن از رسول الله و امیر المومنین علی علیه السلام همیشه زندگیشون شاد و خورنه در آسائش و راحتی هستن ذریب ایمنی فرد و اجتماع بالا میره درصد سلامتی و مندگاری سلامتی هم بالا میره انشاءالله بینندگان عزیز و بزرگواری هم از سایر و اصانهای کشورمون برامون پیامش زدن به سامانه پیام کتار 3625 و پرسش های زیادی رو مطرح کردن. سمیمانه تشکر میکنیم از همه هم هرانه بزرگوارمون لط کردن و... حالا اون اولویت یا بیشترین تعداد پرسش هایی که مطرح شده بود رو من به ترتیب اولویت خدمت شما عرض می کنم فراخور زمانی که پیش رودانیم انشاءالله مباحث رو مطرح می و استاد بزرگوارمون پاسخ خواهند گفت تعداد زیادی از بانوان محترم راجع به برطرف شدن جوش و لکه های صورتشون سوال کرده بودند. راجع به بیماری های قلبی و راه‌های جلوگیری اون افرادی که دچار بیخوابی و افسردگی میشن، افرادی که دچار اسهال مزمن و دلپیچه هستند، برای درمان یبوست و کمکاری معده و کبد چرب پرسش های زیادی شده بود برای لاغر شدن همچنین درد عضو سردردهای مزمن و اینکه با فرزندان پرخاشگر چه کار کنن چه داروهایی برای اونها باید تجویز بشه برخی از بینندگان برای ترک اعتیاد راهکار خواسته بودند و افرادی هم که مبتلا به بیدار شدن مکرر از خوابهای شبانه هستند کمکاری تیروئید رو کاستم راه درمانش رو بفرمایید و همچنین برای ریزش مو که من خاطرم هست در اولین جلسه ای که شما تشریف بردید راجع به ریزش مش... مو صحبت فرمودید خب حالا این بیشترین تعداد پرسش ها بوده خواهش میکنم که فرسلام در سال اولشون که دعوته با جوش صورت جوش های صورت متنوع یکی از چاای ترین جوش ها جوش های قارچی چرکی و یا جوش های غرور جوانی و یا جوش های به سک زونست. اگر افراد آب به مقدار لازم آب آشامیدنی سالم به مقدار لازم و آب جوش بلرم، تو جیره غذاییشون باشه سن سنشون سنای مثلا 35 سال به بالا 8 لیوان سنای کمتر 6 لیوان سنای کمتر 4 لیوان باز تحرک ببین زیاد داره یا نداره کارشون کار سنگینه غیر سنگینه یا بیماری زمینه ای داره مثل شن یا سنگ کلیه یا نداره و مانند اون قیرزات خون داره یا نه پس تو جیره آب و آب جوش بگذارن هیچ مایه ای جای گذینه. این نمیشه خود کمبود آب بدن و نیاز شدید به آب هم جوش های چرکی بدن زیاد میکنه هم قلیزت خون بالا میبره پس آب و آب جوش بلن تو جیره غذایی باشه همچنین با نهار و شامشون کاهو بدون سس شبها یک عدد شیرین. فصله که لیموشیرین نبود یه قاشق چایخوری خوری ترنجبین با آب مخلوط کنن بخورن. از نظر ظاهری اگر بخوان جوش های چرکیشون خشک بشه و بیفته. با پنبه پنبه رو آغشته کنن به آب لیموطوش تازه روی جوشا بذارن وردارن. فشار نمیخواد برن. خودش خوش میشه میافته. به صدر آمیانه. بعضی زمانش ها جو کم میگفتن. اگر کسی پوستش علاوه بر این که جوش داره خارش هم داره اینجا میتونه از روغن کشنه که روغن قسط هم ضد خارشه و هم ضد اگزما و اگر سرکه طبیعی سیب در منزل دارن میتونن با محلول آب سرکه روی جوش بکشن این جوشا خودشون خوش میشه و خارش هم از بین میره اگر صابون بخوان صابون گل ختمی و اگر تماد بخوان پماد آکنیل چیزای دیگه هم هست وقت میگیره اگر کسی دوست داشته باشه هم خونش رقیق بشه هم خونش تصفیه بشه هم از این جوشا بر بدن نباشه جوشانده اناب جوشانده اناب میتونه بخوره اگر طرف های بیرجند و قاینات اینها باشه ماشاءالله زرشک هم دارم جوشانده مخلوط اناب و زرشک یک داروی بسیار قویه من تصور میکنم بله. بله. بله. تصور میکنم که بله. اصداد خوردن نوشابه ها هم تشدید میکنه بله، بله،, بله بله قندهای شیمیایی، نوشابه های گازدار کافئین زیاد و چربی با ترانس بالا افزایش میده دونه های چربی و دونه های غرور جوانی و حتی اگزما رو تشدید میکنه خارش های پوستی و التهاب پوستی رو تشدید میکنه حتی مال زونا تشدید می میشه متشکرم در خصوص بیماری های قلبی هم فرصتی رو مطرح کردین بیماری های قلبی این چارتایی که شمردم نخورن قندهای شیمیایی اسانسای های شیمیایی ترانس چربی بالا و کافئین زیاد نخورن در ببخشید ببخشین بد میشه چون یکی از سوالات اعتیاد نمیشته بودین و بحث دخانیات نباشه سیگار، پیپ، چپا، قلیون نکچن مواد افیونی، بنگو، و هشیش، ماریجوانا، شیشه، کراک و مانند اینها نباشه همچنین قرصهای روان برگردان، اوکستازی، دولفین، آبی و مانند اون اینها نباشه چون خود همینا یکی از علل ایجاد بیماری های قلبیه و نارسائی های ذهنی میاره و طرف رو خبل خبلون یعنی ایجاد ضعف حافظه شدید به اسطلاح آمیانه ببخشید لفظم بد میشه میگن یه تختش کمه دوزارش کجه نمیدارم خول مدنگه این استلاحات آمیانه مردمه همه انسان های شریف خودشون رو دوست دارن مخصوصاً ملت شریف ایران. پس چیزایی که مزره و در سطح شهرها چیزی که مفته و مجانیه انواع دوده. تو بیس چار دود بنزین هست، دود گازویل هست، زروات معلق در هوا در سدش بالا هست، هیدروکربون های محیط از استقاق لاستیک ماشین. این همه زیاده. حالا این خلاف فکر و عقل و علمه. که آدم با زحمت دوست شیفته کار کنه پول در بیاره بعد با پولش بره دخانیات مواد افیونی یا قرصای روان برگردان بخره هم رو دود کنه هم سلامتیشو دود کنه رو درگیر کنه و ایجاد رسوب کنه در عروق کرانر قلب که سرگ اصلی خونرسان به ازاله قلبه پس یکی از علل ایجاد ناراحتی قلبی مصرف دخانیات مواد افیونی و قصه روان برگردانه اعلن دیگر هم هست مثلا چاقی مفرد مثلا پرخوری مثلا کمتحركی. در دسترگ خونرسان به ازوله قلب سه چیز قالبا رسوب میکن یکی سدیوم، یکی کافئین یکی تیریگلیسیری دخون پس افراد سدیوم فشرده نباید بخورن مثل نوشابه های گازدار، آب های شیمیایی، با هر درصدی که است. چای پر رنگ. آفرین. اینها در کشور ما حاجغا ده برابر استاندارد جهانی سدیم داره. تو کشور عراق بیس برابر استاندارد جهانی فشرده داره. سدیم فشرده داره. پس اینها رو تا میتونن نخورن. تو بحث کافئین زیاد تا میتونن چای پر رنگ، چای مونده، چایای اطری که شما فرمودین و همچنین شکلات، کاکاو نسکافه اینها نخورن این رسوب کافئین هم یکی از علب این سبوم هم ترانس چربی بالا نخورن مثل خامه سرشیر کک خامه رولت تعدیک کله پاچه، جیگرسی ها تو میبه ها موز انواع سوس ها روغن جامد ساخت کردن. خیلی متشکرم درمان هم داره بله بفرمایید اگر کسی گرفتگی عروق کرونر قلب داره اینهایی که گفتن ضرر داره تاد کنه هر روز با نهار و شامش کاهو بخوره بدون سس مثلا یک کاهو متوسط از بالا چهار قسمتش کنه یک چهارم با نهار یک چهارم با شام شب ها قبل از خواب اگر سرگش بسته بود سرگ کرونر قلب بسته بود هر شب قبل از خواب یک لیوان آب کرفس خام یک لیوان آب کرفس خام تا دو هفته بعد از دو هفته میشه نصف لیوان هفته سوم و چهارم هفته پنجم به بعد میشه یک استکان کمرباری که از هفته ششم به بعد میشه یک ساقه کرفس یه بسته کرفس که میخره کرفس خوراکی ساقه روش و برگاش میزه رو خورش سبزی ساقه های بعدشو از هفته پنجم به بعد که تموم شد آغاز هفته شیشان هر شب یکی دو ساقه میخوره دندون نداره یا دندوناش درد میکنه رنده میکنه با قشب پلو خوری میخوره دعاشو به جون امام صادق علیه السلام کنم الخست یصف الدم الخست و یطفع حرارت الدم کاهو خوردن این خون رو تصفیه میکنه حرارت اضافی داخل خون رو کاهش میده لذا مریض بیقراری شبانه و بیتابی روزانه نداره آثار مثبت دیگه هم داره تروایات شیه میفهماید الكرفس چهار فائده داره به سلح امروزی ها هم قنده خونش میاره پایین هم چربی خونشی میاره پایین هم فشار خوشی میره پایین حالا مباحثه خودم گرفتگی اروغ کرانر قلب هم همه رگهای گرفتگی بدن رو باز میکنه از جمله رگهای گرفتگی اروغ کرانر قلب و یفتح و صدد رگهای گرفتگی رو باز میکنه به اصطلاع علمای ساله شیعه جمع محله به الفلام جنس مفیده عم شمولی و عم استیابیه. یعنی همه رگها سه نوع رگ در بدن سخ رگ ها که شریان هاست ورید ها که سیاه رگ هاست و رگ های لمفاوی همه اینا رو باز نگه می داره نمیگذاره به شراین بگیره نمیگذاره بیماری پرفشاری خون بگیره نمیگذاره رسوب چربی مخصوصا چربی خاص تریگلیسید خون در رگ های کرونه قلب بگیره خوابش راحت میشه این که فرمودین بعضی چند بار شب و پا میشن یه بار ضعف اعصاب شدید داره، افسادگی شدید داره، استراب دلوره شدید داره یه بار دیگه نه، مسائل گرفتگی اروغ کرانر قلبه یه بار دیگه نه، یبوست مزمن و دلپیچه های شدیده علال مختلف داره، بیدار شدن های مکرده اتفاقا پرسش بعدی ما هم پیرامون همین هست که آیا توضیحات بیشتری سلاح میدونید برای, برای بیخوابی و افسردگی؟ با. کسانی که افسردگی دارن این افسردگی سه قسمه نظر تخصصی روانشناسی بالینی گاهی افسردگی عادی یعنی سرم خوردگی روانی گاهی افسرده خوئی یعنی خسلت و صفتش افسرده بودن. این هم یه بیماری دیگه گاهی افسردگی درونزاست یعنی بیماری مالی خولیا در صورت اول و دوم میتونن استفاده از دوتا گل کنن گل راعی که چای کوهیه که منطقه چکنه سرولایت میگویند چای پشمکی استان همدان چای کوفته خارجی ها میگن هو فارقون از رسته داروهای دپرسانت جمهوری اسلامی ایران هم قطعه های پیران زده اگر حامله نیست، بچه شیرده نیست و یا کودک، زیر سن دو سال نیست. اینجا میتونن از قطره های پیران استفاده کنن در درمان افسادگیشون. یکی دیگه مومن گل بهار نارنج، مرباش، یا اصلش، یا مسقطیش میتونن اول مغربی یکیشه بخورن، یکیش هم صبب بخورن. چیزهایی که تند و تیزه و چیزهایی که ترشه اینها تشدید میکنه ضعف اعصابشون رو و به استراب و تپش قلبم بالا میبره پس چیزای توندوتیز مثل فلفل سس فلفل سس انبه، غذای هندی نخورن توسیجات توندوتیز بندری ریته ای و همچنین مؤمنا در قروت لواشک آلوچه گوجه سبز از این چیزا نخورن چون تپش قلبشون میره بالا دلشون هرمار میزه استراب بیشتر میشه حالا این متخصص قلب و عروق قرصه زده تپش مجبور میشه بینا بده این شبیه اسماتیز صورتی رنگ خیلی هم سفته. نصفش کنه نصفش صبح با یه لیوان آب بخوره نصفش شب با یه لیوان آب ولی از این قویتر چیه مومن؟ از این قویتر که زدن تپش قلب باشه دعاشه به جون امیر المومنین علی علیه السلام فهم. اکل و سفر جله یقبی قلب وعیف خوردن میوه به یا آب به یا مربای به این صرف بخور یکی دو قاشق پلو خوری آبش یه استقام شب بعد از شامشون تا سیب رسید آب بگیرن یک قاشق پلو خوری عسل طبیعی آبشن نعنو قاتیش هم بزنن بخور به دو هفته سرباز دیگه نمیقا تا آخر آن قرص زده تپش قلب بخورن خیلی متشکرم. خیلی زود برمی‌گردید. سلام. دست شما درد نکنه. دفعه روز بخیر تغازه ها میکنیم بینندگان و سروران بزرگوارمون تلفن های سازمان رو برای طرح پرستش هاتون اشخال نفرمایید سامانه 3625 سالاتون رو ارسال بکنید حتما رسد میکنیم و خدمت مهمان عزیز و گرانقدرمون مطرح خواهیم کرد یکی دیگر از مواردی که این روزها خیلی شایع هست حالا با به یا آلودگی حواست یا ممکنه ویروسی باشه صرفه کودکان هست که به تبع اون بعضی هم همش احساس سوزش در گلو دارن صرفه های متعددی می کنن خواهش می کنم که چه داروهای گیاهی باید مصرف بکنن اگر از آلودگی هوا باشه در پیک بار ترافیک نباید بیرون بیان ساعت های ده صبح تا دو بعد از ظهر و بعد از زورا ساعت چهار تا شیش هفت بعد از ظهر تو که بار ترافیک نباید بیرون بیان هم ذروات معلق در هوا یا آیروسل زیاده هم هیدروکربون ها خشکشون تکرارش بیشتر میشه شبه آسم میشه و شبه برونشیت حاد میشه دوم این که ماسک کاغذی حد اقل باید جلوی بینی و دهنشون رو بگیرن که عمر مفید این ماسک ها دو ساعته بعد از ساعت باید دور بندازم نه اینکه هر روز تو جیبش بذاره بذاره دوباره سر کا دورباگر بزنه نه بعد از ساعت باید دور بنداز اگر گرد و خاک و اینها بود میتونه یک کم مرتوبش کنه اگر مسائل سمی بود بخارات سمی مثل استون مثل آرسنیک مثل آمونیاک بخارات مسموم و دروغان واسکازین در این جه ها باید این ماسکشو یک کم کنه به سرکه تا این محلول های شیمیایی خونسا کنه قبل اینکه به بینی و حلقش برسه اکثرا در کودکان حاجه ها ببخشن بینندگاه عزیز منو اکثرا در کودکان به خاطر بدخوریه و قفلت پدر و مادرهای عزیزه بچهشون دوست دارن اینکه لپ بچهشون میره میاد خوشش میاد هی به بچه شکلات میده یا نارنگی میده. شکلات و نارنگی هم تورم لوزه های جانبی میاره، هم تشدید میکنه تورم لوزه سوم رو و هم ایجاد سولفه های خشک و تکرار اون و کم کم دوچار های خلتی میشن. پس شکلات رو با هر نوع قسمش داخلی و خارجی و انواع نارنگی رو این از غذایی بچه حس کنن پنجا درست خوب شده حالا اگه از صرف های تازه پیدا شده است اینجا خورمالو میوه خورمالو یک میوه قوی ضد صرف است به بچه یک چهارمش تا یکی میتونه یواش یواش بخوره بچه کچیکه یک قاشق چای خوری این لپاش له کنم بهش بدن به جای شربت های اسپکترانت تو شربتای ضد احتقان این از او قوی قوی‌تر اگر فصلی بود که خورمالو نبود این ها و دونبرگاشو برگاش یه قوری قوری کوچیک شیش هفته تا از این سه استکان آب روش بریزن یه 20 دقیقه بجوشه بعد چه کم سن بود با قاشق چایخوری یکی دو قاشق چایخوری سننا رفت بالا میرسه سنایما به یک استکان تو 24 ساعت یک بار صفای خوش که مکرر قطع میشه اما اگر کسی سرفه های خشک مکرر مزمن دارد یعنی سرفه های خشک چندین ساله اینجا مخلوط شکر تیغال که از گیاه دم است به اضافه گل زوفا به اضافه عناب همه اینایی که میفرمایید در عطاری ها هست بله عطاری هایی که خودشون تخصص داشته باشن یه بار مثلا عطاری مثل سبزی فروش اما گیاه شناس نیست، آدم خوبیه، اما گیاه شناس نیست و برن پیش دکتر گیاهی گاهی بعض یا دارو فروشن اما داروساز و یا دکتر داروی نیستن تو بحث گیاهان دارویی هم باید برن پیش دکتر دارویی ما در سطح مشهد مقدس دوازده فرد هستن که اینها اجازه دارن از دانشگاه فردوسی مشهد که نسخه نویسی کنن بقیه چون همجور دارو فروش هن. در سطح مشهد میتونن مراجعه کنن به دکتر داروی جاهای مختلف هستن ری... اینه باید چی جور بخوره؟ این سه مسقال شکر تیغال چهار مسقال گل زوفا پنج مسقال اناب تا رو پود میکنه قاتی هم میکنه یک قاشق چای خوری پودر مخلوط رو میریزه تو استقال روش آب جوش بریزه پنگ دیگه ده دیگه سب کنه هم بزنه وله هم که شد قرقره کنه قرط بده قرقره کنه قرط بده صفحای خوشک موزمن قد میشه پس یه بار دیگه بفرمید شکر شکر تیغال, تیغال که از گیاه دم اصده به اضافه گل زوفا, زوفا. به اضافه. اضافه انا انا اولی سه مصقال دومی چهار مصقال سه بومی پنج مصقال این ستاره پود میکنن نخلوت هم میکنن یه قاشق چای خوری میزن تو استکار روش آب جوش بریزن پنگ دقیقه ده دقیقه صبر کنن بعد هم بزنن قرقره کنن قورت بدن صرفه خشک خوشک مزمن قد میشن انشاءالله. انشاءالله. برای افرادی که جهت اجابت مزاجشون مشکل دارن پایی وست و کمکاری معده مواجه هستن چه تجویزی میشه کرد؟ اینجا اگر سمی بخوام بیشتر ما از کردم که مثل گیاه هنزل، اما سمی، زیر نظر متخصص یا مثلاً فرستونی فلوس، یه گیاه به صورت قهوه‌ای رنگ داخلش، داخلش سه تا ده سانتی متر، سه تا ده متر داخلش چند متره؟ یک استکان آبیش بله هم حل می کنن می خورن. یه مزمن خوب فقط سه روز یه بار دیگه نه طبیعی خوشمزه می خوان. اما باید زن حامله و زن بچه شیرده نخوره برگ سنا برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی اگر خانمی حامله یا بچه شیرده هست برگ سناش شو حصف می کنیم جاش گلبرگ گل محمدی میزنیم گلبرگ گل محمدی برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی به نسبت مساوی اینا رو پود کنن روزی یه قاشق مربو خوری بخوره با یک لیوان آب اگر بخواد اول واسیا یه قاشق پلو خوری از این بخوره با دو لیوان آب تا شب هفهش بار میره قرار صدا. اما اگر بخواد املاح بدنش کم نشه یه قاشق مرب بخوری با یه لیوان آب بخوره اینا از این قرصه شیمیایی یا شیاف روغنی که دکترای محترم میدن قوی تره و همچنین از قرصه گیاهی سیلاکس یا سنالاکس میدن بهتره چرا؟ چون سیلاکس و سنالاکس لیزی معده و کلیت روده میاره یعنی التحاب روده میاره لذا تو تخصصی دارو شناسیم گل خطمی سفید و گل خطمی خبازی میدن تا اثر سوء برگ سنا رو عبین ببرن چیزایی دیگر هم خوشمزه هست مثلا اگر کسی دیابت ندارد قند خونش بالا نیست بیماری قند نداره اما یوبوسد داره اینجا گل قند یعنی گل برگ گل محمدی با قند ساویده به نسبت مساوید یه قاشو پلو خوری با یه لیوان آب بخوره اگر کسی دیابت داره اینجا این گلبرگ گل محمدی رو بسابونه با شیره توت قاطی کنه بخوره چون در ها کمترین قند رو داره مطلب دیگه شربت انجیر یا مربای انجیر اگر کسی دیابت نداره این رو با قند درست کنن مسهل قویه و اگر کسی دیابت داره، این مربای انجیر یا شربت انجیر رو با شیره تود درست کنه. بسید دیابتی هم خوبه که یکی از عوارض دیابت یوبستت مزمنه. دیگه روزی دو بار کار میکن. چیزهای ملعین، مثلا اگر تابستون میوه طالبی، تو زمستون ملعین ها یک خود آب خوردن، خود آبجوش بله هم خوردن. خودش شیر سرد خوردن مخصوصا با اصل صبح ناشتا صبح زود یک لیوان شیر سرد و با یه قاشق مراب بخوری اصل بخوره یا با قند سایده بخوره اگر دیابت نداره قابل عرض دیابتی ها اصل طبیعی میوه گلابی آلو بخارا میوه گیلاس و همچنین زردک که حویج زرد. اینها چون سوربیتول داره قندخون بالا نمیبره و سوربیتول در بدن هفتار درصدش تبدیل به کالوریه انرژی میشه و بالعکس افرادی که دوچار اسهال مزمن هستن و دلپیچه دارن زیر پادویشون زیاد هست بفرمایی که چه, چه باید استفاده بود؟ کسانی که اسهال مزمن دارن باید ببینیم آیا التهاب روده دارن کلیت روده؟ یا نه سندروم روده تحریک بزیر دارن ای بی اس اما نوع دومش که همیشه شکم روش دارن یا مشکلات جذب صفرا دارن چون باید اکثر صفرا انتهای روده کچه جذب دستگاه گردش خون بشه تا تعادل صفرا در بدن به هم نخوند حالا اگر هر کدوم اینا رو دارن مزمن دلپیچه های شدید داروشیه سه چیز کی سنجت یا پودر سنگ دوم اناب سوم پودر هسته انار پودر هسته انار اگر کسی اسهال به نوع بیماری دارد مثلا اسهال وبایی دارد که اسهال آبچلوئی به اصطلاح پزشک و های از این دست پودر پوست میوه انار هر نوع اسهالی برمیاره حتی اسهال وبایی فد زیر نظر متخصص گیاهی چون پوست انار سمیه بیشتر از یک قاشق چایخوری که 24 سانتی گرم نرو بخوره اما این خوشمزه های غیر سمی مثل سنجد مثل انار و مثل پودر هسته انار این اسهالایی که هست برطرفش اما پیچش های شکمه توعم با درد به اصطلاح پزشکی دل پیچ تو روایات شیعه داریم میگه مقصن میم غین ساد مقصن پیچش های شدید شکمی گردو با همین پوستش میذاره رو آتش یک مقداری سب میکنه مقص که شد روزی یکی دو عدد مقصفخت گردو میخوره که توضیح دادم این پیچش های شکمی خوب میشه همچنین سنجد انداد و پودر هسته اناب بیشتر تو مناطق عرب نشین خوزستان یا عراق از پودر هستی اناب استفاده میکنن نمیدونم فرصت داریم ما فرصش دیگه ای رو مطرح بکنیم باید خدافزی بکنیم بله خیلی سپاسگزارم سوالات دیگر رو انشالله هست آتی با حضور سرورمون اج های مطرح خواهیم کرد زمین این که بینندگان ما استهزار داشته باشند تکرار این برنامه رو صبح جمعه میتونم حد فاصل ساعت 8 تا نه باداد ملاحظه بکنن و انشالله بهره مند خواهند شد. بله، مجددا درخواست می کنیمیم تلفن های سازمان و ااشخال نفرمایید پرسش حوز و طرق سامانه 3625 با ما در میان بگذارید تا انشاءالله بتونیم اونها رو مصرح بکنیم از توجه و اعنایت شما بینندگان خوبمون نسبت به این بخش برنامه تشکر میکنم از تشیف فرمایی حضرتالی هم همچونی خب دوستان به من بگم باید خدافزی بکنیم خیلی تشکر خب سلامت بشیم.